ای از حرم از ذات تو اغلا گهنی، و از معصیت و طاعت ما مستقنی، مستم ز گناه و از رجا و شارم، امید به رحمت تو دارم یعنی. این کار جهان اگر به تقلید دستی هر روز به جای خیشتن ای دستی هر کس به مراد خیش دستی بزدی، گرزن که نه این بیهده توحید استی. ای چهر دلم همیشه غمناک کنی، بیراهن خرمی من چاک کنی، بادی که رسد به من توش اش آب کنی، آبی که خورم تو در دهن خاک کنی. ای دلزق و بار جسم گر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی، ارشست نشی من تو شرمت بادا، کانی و مقیم خطه خاک شوی.